غیر غیرون ماه پنهان شده به خوابندرون مرغ و دام و دده چنان دید سالار پیران به خواب که شمعی برافروخت از آفتاب سیاوش بر شم تیغی به دست با آواز گفتی نشاید نشست از این خواب نوشین سرازاد کن ز فرمانگی، یکی یاد کن که روزی نوایی و, و جشنی نو است، شب زادن شاه که خسرو است. داوند بیچون و چند برارنده هفت چرخ بلند سلام ارز می کنم خدمت همه شما شنوندگان فرزانه و اهل دل و جاناگاه شبکه فرهنگ شمایی که مثل ما پشت پنجره روبه محتاب نشستید و از چارچوب این پنجره قصد دارید تا نگاهی به افق دوردست و دست نیافتنی شاهنامه داشته باشید بنده این توفیق نصیبم شده که امشب هم مثل چند هفته پیش در خدمت شما و در خدمت استاد بسیار عزیز و گران جناب آقای دکتر فریدون جنیدی باشم و درباره شاهنامه صحبت بکنیم قبل از اینکه وارد استادیو بشیم من خدمت جناب استاد رسیدم، ابراز خوشحالی کردم و گفتم از اون برنامهی که ما با هم داشتیم در مورد رستم و سهراب سوالاتی در ذهن من نقش بست که واقعا دلم میخواست فرصتی بود تا این سوالات رو مطرح کنم اگرچه امشب قراره که عبیاتی درباره یعنی از قسمت که خسرو خونده بشه اما خب سوالات من بعضی هاش در ارتباط با اون برنامه قبلیه که در مورد رستم و سهراب بود اصلا در خدمتون هستیم خیلی خوشحالم سلام ارز میکنم برای چند بار خدمت شما و خوشحالم که در خدمتون هست. درود بر شما شاد باشید در برنامه پیشین به اونجا رسیدیم که پیران یعنی گیف دست پیران رو بست و او رو راها کرد و به دنباله برنامه توجه میکنیم چه از لشگر آگه شد و رو تیره شد تابش آفتاب ازاآن پس به مغزنده رفکند باد به دشنام و سوگند لب برگشاد که در گیو که کیخوسرو دیو زاد شوند دبر قرنده گر تیز باد فرود آورم شون ابر بلند بزد دست از گرز بخشاد بند به حومان بفرمود کندر شتاب انان را مکش تا لب رود آب یعنی رودی جیهون میانجی بوده رسیدند پس گیو و به آب، همی بودشان برگذاشتن شتاب. بدو گفت گی ورتو تو که خسروی، نبینی از این آب جز نیکویی. فریدون که بگذاشت اروند رود، فرستاد تخت مهیرات درود. جهانی شدو را سراسر رهی که با روشنی بود و با فر رهی. داستان فریدون چینی است که وقتی که برای مبارزه با ستم زرحاک به طرف بابل میرفت از ارواند رود گذشت به یاری شنای اسب و گیو به این داستان اشاره میکنه که اگر تو هم واقعا پادشاه هستی فرقیانی داری تو باید بتونی که از این آب بگذری. نیازت به کشچی نباشه بهدان به دو گفت خسروان این است و بس پناه هم به ازدان فریات ر و آبندطرفکن خاصرو سی ها یعنی اصل سی رو. چون کشتی هم ایران تا باجگاه باشگاه دو روی رود باجگاه بوده یعنی به سوی توران باج توران رو می برای کسانی که از ایران میرفتن به طرف توران این سو باج ایران رو می از کسانی که از توران میمدن به طرف ایران مفوط باجگاه اینجاست. بدان سو گذشتند، هر درست، جهانجوی خسرو سر و تنبه شست، در نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. پیشتر از در جلسه پیش من گفتم که پیشتر از خواندن نماز و نیایش خداوند در ایران باستان دست و رو رو و یه بخشی به نام سوشباز رو می که آماده بشن برای نیایش یزدان، این این رو کرد تا بیشتر اقدام یعنی سرن همهرش اوست. چون نزدیک رود آمد افررا ندید هیچ مردم نکشتی برام یکی باننگ زد تند بر باژخواه که چون یافت آن دیو بر آب راه چون این داد پاسخ که ای شهریار پدر باشژبان بود و من باژدار ندیدم نه هرگز شنیدم چنین که کردی ای کسی ایزا به جیهون زمین یعنی مسی که رو زمین عبور میکردن از رود گذشتن چنان برگذشتند هر سوار هوا داشت چون گفتیند در کنار از آن پس به بود افراسیاب که بشتاب و کشتی برفکند براب بدو گفت هومان که ای شهریار یار آتش مکن در کنار همان همانا که از گاه سیر آمدی که ایدر به چنگال شیر آمدی از این روی تا چین و ماچین تو راست خور و ماه و کیوان و پروین تو راست تو توران نگهدار و تخت بلند از ایران کنون نیست بیمگزند پر از خوندل از رود گشتند باز برآمد برین روزگاری دراز چوبا گیر که خسرو آمد به زم یعنی زم یک شهری بوده این سوی آمودریا یا جیهون از آن ایران جهان چند از اون شاد و چندی دو جم. این رو بعدا میبینیم برای به که خسرو به ویژه که در سوی خراسان بودن اینا ناراضی بودند از این پادشاهی ولی خب کسانی که در خوربران بودن یعنی در غرب ایران بودن اونها استقبال میکردند. اینجا میگه که جهان چند ازور شاد و چندی دو جن حلت اینه خویونان کفکفکن بادپای بجستند برسان آتش در جای این مخصوص اسبان دیوان برید هست چون در ایران از زمان خیلی کوهن دیوان برید داشتیم و نامش بود بی اسپان بی به زبان عوضی پیشوند دو. البته درسته که دوها هم در زبان عوضی داریم ولی بی به معنی دوهه که به زبان اروپایی هم رست پرد مثلا بیار دراجنگ یعنی درازای دو سال و بی اسپان یعنی دو اسب. این دو اسب داستانش اینه که با یه اسب که سوار می شدن که نامر ببرن به میل بعدی و جایگاه بعدی یک اسب دیبات اونجا حاضر می شد با آتش اشاره میکرد که اسب حاضر کنین بنابراین این نامه همواره بین دو تا اسب قرار داشت یکی اسب آماده برای رفتن و یکی اسب که به تخت میرفت به طرف اون اسب آماده. این واژه رو کسی توجه نکرده به سببان خوندن و معنیش رو در ولی خب معنی روشن شمینه یعنی نامه و پیامی که بین دو اسب قرار داره سب کشش های زیادی اخیراً شده که از نویسندگان پجاندگان خیلی خوب در باره دیوان برید و راه و در حال اون چیز که امروز بهش میگن پوست باید بدونیم که این کار از زمان حقامانشیان انجام نگرفت درسته که یونانیان این رو در زمان حقامانشیان در جان دیدن و فکر کردند حقامانشیان این کار رو کردن اما این کار سابقه داره در داستانی به نام یادگار زر که شرح جنگ های به اصطلاح مذهبی بین هیونان و ایرانیان هست علتش این که ایرانیان که پیروی زرسوش رو پذیفتن اونا نامه نویشن که از این دین جدید بازگردید و به دین که هنگ یعنی کشی مهر باش اگر بازگردید ما به شما باش خواهیم داد اگر نه ما میگمو تر رو خشک کنیم خوشک رو می دو پای چهار پای برده می گیریم و شعب ایران شهر خراب می‌کنیم، کنیم بر می این جنگ ها زمان خیلی دراز طول کشید تا بالاخره یونان شکست خوردن گاه گاه پیروز می گاه گاه گا شکست می خوردن به شکست اونا انجامید ما می بینیم که در این یادگار زریران جمعه اومده که گوشتادشا به زریر ایران سفه بود سفح به ذریع ایران صفحبت که برادرش بود دستور میده که بیاسبان رو آگاه کن و بفرمایی تا بر فراز کوههای پرز آتش روشن کنند تا به ایرانیان آگاهی رسانند ازده از به زبان ارساینی آگاهی به آگاهی برسانند که هرکس که از سن 15 سال والاست که ماه آینده به دربار گشتاس بیانند می‌بینیم که خیلی روشن هم از بیاسپان برده شده و هم از آتش افروزی بر فراز کوه یعنی به این ترتیب به همدیگه مخابره میکردم بعدا خب در زمان هخانشون زیباتر شد و اون دو تا بالاخره آتشدانی که نزدیک تخت هست که شما می‌بینید برای همین بود اونام هم گروهی می‌گوردن که اونجا آتش هست یعنی آتشگاه در حالی که آتش در آتشگاه باید سخ باشه نهاد از بر آتشان گومبدان این در زمان گوشساز شده یعنی آتشی که در آتشکده هست نماد، حتی آتشی معمولی نماد آب روش ویژه چون میون وقتی آب میریخته میشه رو آتش یه صدای بانگی برمیاد که ایرانیان گفتن که ایزد آذر از این موجود دلتنگ که آب روی آتش ریختن و هنوزم در بسیاری از جهات آب رو روی آتش ریختن گناه می در مثلا در بختیاری اصلا چه این کاری من یک جریانی به یاد میارم که یکی از فرزندان مونیاد نشابور موقعی که زمان جنگ بود چاشن به سوری شده بود اینا که آتش روشن و از اطراف و از از های بر احواز بوده از های بلند فریاد کشیدن که آتش خاموش کنید جنگ و حوپی ما دشمن نبینه و شعارهای که اون زمان میدادن اینا رفتن گفت ما رفتیم که یه سطر برداریم که رو آتیش بریزیم. یک مهمان داشتیم از بختیاری رو آماده بود مهمان ما بود. این بلند شد و با غذب و ناراحتی گفت من از خونه شما کافران میرم. ما گفتیم برای چی؟ گفت شما آوی رو میریزین روی تش؟ یعنی هنوز آمد. این رو هست. در بختیاری اگر یه جای کباب درست کنند تو بیابون میگذارند تا اون خودش خاموش بشه. با خاک خودش خودش خاکستر بشه. با خاک میشه. خاکم روش نمیریزه. میشه با خاک ماتش رو خاموش کرد. اما در وقتیاری این کارو نمی کنه. بنابراین اون دو تا میلی که شما می‌بینید آتشگاه هست اینجا. همون آتشدان برای مخابره. برای مخابره بعد دو تا آتش باشه. همینطور طور که در الفبای مورس که دیگه 1000 تا سال، ساله که دیگه از بین رفت دو تا علامتش. یه خط یه نقطه. و یه خط و نقطه میتونیم شما تمام علف رو برسیم مثلا یه خط یه نقطه ا باشه یه خط و نقطه ب باشه مم. یه خط سه نقطه مثلا پ باشه دو خط و یک نقطه مثلا جیم هم تو تا آخر و این دو تا در حقت ام که اونجا می‌بینید این کار رو می‌کرده در زمان در زمان‌های دور در زمان هخومنیان زیبا بوده اما در پرفراز کهن و برز آتش روشن کنید و ایرانیان را آگاه کنید چطور میشه غیر از اینکه که این عرفه از در زمان گشتات بوده باشه ما زمان بندی هایی که کردیم و بیاری استاد بربریان حرکات یعنی رویدادهای زمین رو با زمان و شاهنامه و روبرو کردیم زمان گشتاس فقیباً چار هزار و, هزار و چار سال پیشه یعنی در 3600 پیش ما داشتیم اما در زمان هخامنشیان خوب زیباتر شد یعنی این آتشتان های سنگی و بعد هم یک موضوع این که می بینید که این محجد های ایرانی دو تا منار دارن منار یعنی چی هستن؟ منار یعنی جای روشنه آتش در حقیقت اعراب این جای آتشتان گذاشتن منار یا منار چرا دو تاست؟ برای که در زمان قدیم هم همین دو تا آتشان برای مخابره بوده اینا. بعد حالا آمد دو طرف مسجد قرار گرفت و میرانیان بهش گفتن گلدسته. اما این یادگار هنوز از زمان پیشه. خب این دستگاه مخابره بود. اون چیزی که مهم اینه که نیانکان ما بودن که عصف رو ران کردن و به جهان هم کردند و بهترین نجات های اساس از ایران بود. ما در زمان در مطون سومری در گلنویشه های سومری داریم که اونها وقتی که عصب رو دیدن در کوه های یعنی زاگروس که نام یونانیش متاسفانه ما همه میگیم اوپایری سعنه یعنی کوهی که برفراش فلز هست و این در پرلمش اپورسین در فارسی هم برابر یعنی تغییری که میکنه قانونی که تغییر میده باجه ها رو باید بشه ابرسین خدا اون هم یعنی کوه که بر ابر یعنی بر فرازش آهنگ هست سن آسن به کوردی آن سمنناانی آن ه قابل تبدیل به سه مثل خروس و خروه بنابراین آهن در داوانکن آهن یعنی همون آسن کوردی و سمنانی و در نشور آهنگر نمیگن می هنگ هنوز این هست یعنی این سن عبر سن یعنی کوی که بالاش فللس هست. خب میبینیم کنان اسب رو ندیده بودن وقتی که اسب میدیدن اسب رو در این کوهستان ها تو نوشته ها الان هست که باشندگان این کوه کوهای کور اونا میگفتن خر کوهی دارن یعنی اسب در سومر نبود خب تا اینجا رسیدیم اخیراً من دیروز شنیدم یک از فرزندان بنیاد نشو جوانان ناراحت شدن از اینکه در یکی از برنامه های تلویزیون ایران گفته شده یه عصبی رو به نام عربیان عربیان پرشن عصب آه یعنی چی؟ وقتی سومر اسب نداشته در سهره عربستان عصب البته بعدها رفت بله. بعدها یک نوع عصبی رفت که طاقت داشت که کمتر غذا بخور و لاغر بود و اینها اما اینکه ما میگیم تازی اسب یعنی اسب تازنده نه اسب عصب... عصب رو که نمیشه گفت عصب عربیه که اسب دیگه نمیشه گفت, گفت. یعنی عصبی که نجادش نه بادم گفت یعنی اسبی ندارین که نژاد نه تمام اسب از ایران رفته به همه آه. جای جهان اخیرا هم که یکی از دستپورددگان کشور خارجی که نامشون بخوام بگم جاسوسی چند سالی خاوم اومد در دشت تا زیباترین زیبا ترین اسب ما رو که اسب چه خذر باشه پرورش تا دکتر استاد بار کرد به موفر استاد آمریکا اینجا براش تجلیل گرفتن من از یکی از مون یادت نشه گوشش که من از هلند میخواستم بیام یه مقدار تخم و گول از هلند ببرم در هلند سگایی هستن که میان رو بو میکنن سگا اشاره کردن که این تخم میگوله برعزی مثلا 10 تخم از من گرفتن نگذاشتن من بیارم تخم ما از چی خزر رو دادیم با آمریکا خب ما کریمی استاد مستق... اونها خسیفن یعنی اصل میشه اگه پرورش داد گلی که میشه پرورش داد همه دنیا استفاده کنن از ایران بله؟ چرا اون گلشونده اونا کاره بدی میکنه اون دلداری بدین ولی میدونید صادرات که... گل قشنگ ترین صادرات دنیا هست بله. سر... بله. گول... بهترین گل ها هم از ایران بوده از بله. ایران رفته شما گ نام ها همه نشون میده که این گل ها از ایران رفته در هر صورت توی یه برنامه ایرانی وقتی که اسب تازی رو بگن عربی هم. پرژین همچ چیزی گفتن این واقعا جای تصف به هر صورت این می‌بینی که هیونان کف کردن، اسب عصب خوب عصبیه که وقتی حرکت میکنه در گرفتن رخش من اینو گفتم که باید دهانش همیشه باز باشه و از گوشه دهانش اینو کف بریزه صفات خوبی که برای رخش شموردن یکیش اینه کف کرده کفک، افکن بوده حالا اینجا میگه که هیونان کفککن بادپای بچستند برسان آتش زجای میبینید که اینجا دیگه دیوان برید بوده و گیف به چند سوب ایران خبر میده که با خسرو خاص رو باگشته. فرستاده گیو روکشن روان نخستین بیامد برای پهلوان مقصود گودرزه چون در این زمان او پهلوان ایران بود دیگه نبود هیامش همه گفت و نامه بداد جهان پهلوان نامه بر سر نهاد ز بحر سیاوش ببارید آب همی کرد نفرین بر افراسیاب خبر شد به بگیتی که فرزند شاه جهانجوی که آمد بامد زراح سفهبت را پیش خاند بران نامه گیو گوهر فشاند جهانی به شادی بیا راستن به هر جای رامشگران خواستند من این چند بارم گفتم که وقتی پادشاهی سپهداری، پهلوان پیروزی، سپاه پیروز برمیگشت مردم تمام کوچو و بیابان و خیابان و همه جا رو آزین میکردن و هرچی سیزهای زیبا داشتن میوردن به دیوارها آویزون میکردن تا چه پنجاه سال پیش بود یک چنین رسمی آخرین بار که من دیدم که در روستا یک شخصی که ساعت در حقیقت شماعت دار ساعت دیواری رو زیبا داشته تو خونش آورد و زد رو, رو دیوار و این کار میکردن آرهش میدازن حتی در جاهایی که شهر نبود گنبت میزد یه گنبت بینی راه میزدن اون گنبت آرهش میکردن تا سپاه از این اون گنبت رد بشه بیا راست خودرد کاخ بلند همه دیبه خسروانی فکند یکی تخت بنهاد پیکر بذر بدون در چند گونه گوهر یکی تاج با یارو، گوشوار یکی توق پرگوهر شاهوار، چو چشم سبحبت برآمد به شاه همون گیر را دید با او برا ستودش فراوان و کرد آفرین چنین گفت که شهر یار زمین جهاندار یزدان گوای من است که دیدار تو رهنمای من است بزرگان ایران همه پیش اوی یک و یک نهادند برخاک روی ببوسید چشم و سر گیو گفت که بیرون کشیدی سپهر از نهفت یعنی که خصوص رو به سپهر تشمیه میکنه که تو سپهر رو از نهفت پنانگاه خودش بیرون کشیدی گزارنده خواب و جنگی توی گه, م... گه چاره مرد درنگی توی سوی خامه پهلوان آمدند همه شاد و روشندوان آمدند به بودند یک هفته بامایی به دست بیا راسته نشست به نشست و هشتم سوی شهر کاووس شاه همه شاد دل برگرفتم راه. بله استاد زنده باشید. واقعا هم عبیات بسیار زیبایی بود و تفسیر شما و تعبیل شما هم بسیار زیبا. باید 21 و 55 دقیقه و 50 ثانیه است و ما از شبکه فرهنگ با برنامه پنجره های به محتاب در خدمت شما و در خدمت استاد فریدون جنیدی هستیم من انقدر مجذوب صحبت های استاد جنیدی شدم مثلا زمان از دستم خارج شد که الان در حدود مثلا نیم ساعته که استاد صحبت میکنن این نیم ساعت برای من دو دقیقه بود استاد یک دقیقه بود اطلاعات وسیع شما و اون موش کافی های دقیق شما خیلی واقعا برای من شنیدنیه با وجود این استاد هم از شما اجازه گرفتم که سوش. یه پرانتزی باز بکنیم به این کمانک اون... کمانک بس. بله کمان. چقدر چیزی زیبا اینو فرهنگستان میدونه که من نمیدونم فرهنگستان چقدر چقدر خوبه, خوبه که بزرگی پرانتز کمانک خیلی زیبا ده. کمانکی باز کنیم و من از اون جلسه که برنامه که در خدمت شما بودم چند تا سوال در ذهنم نقش بست خصوصای که برخورد شما رو با داستان رستم و سهراب برخورد عاطفی هم دیدم در اینه که بسیار اقلانی هم بود این پرسش ها در ذهن من نقش بست از اون شب تا امشب این پرسش ها همراه من بود و خداوند این توفیق رو نصیب من کرد که من امشب در خدمت شما باشم استاد نیست که داستان رستم و سهراب سوگ است قم نامه است یا به قول غربی ها به تراژدیه. خب این سوگ هم یعنی مرکت سقلش برخواسته از تصور ما از حقیقتی به نام مرگ توی این تراجدی اصلا موضوع اصلی محور اصلی هر تراژدی مرگه خب فردوسی در داستان رستم و سهراب دو بیت فوقلاده رو داره در مورد مرگ و این که مرگ رازیه که ما ازش هیچ چیز نمی دونیم. و یا در مورد حق بودن یا داد بودن مرگ. اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زدادین همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جان تو آگاه نیست. ببین پرده اندر تو را راه نیست. دو تو پرسش اینجا با من. برای من مقصد شده. یکی اینکه که فردوسی چه نظری در مورد مرگ داره. چون اصلا اون با اگری که اون بالا آورده واژه ای اگر شک و تردید خودش رو به نوعی با این پرسش در عنوان میکنه اگر مرگ داده است بیداد چیست و دوان این پرسش هم حالا بعد از اون پرسش هم. پاسخ شما ترم میکنن اون که اگر مرگ علت اصلی غمنامه رستم و سهرابه پس چرا مثلا پسرکشی هایی که در تاریخ ما وجود داشته تبدیل به سوگنامه نشده یعنی به اندازه داستان رستم و سهراب و آب چشم نبوده یعنی اگر اینطور تصور بکنیم که چون پدری پسرش رو کشته این ماجرا باعث شده که این تراژدی باشه نامه باشه سودنامه باشه این همه تشرکشی تو داستان بوده حتی خود تو همین منظومه هم گوشتاس پدر اسفندیار یا گرشاس بهش توهین میکنه گشت از پدر اسفندیار پسرکشی خواست بکنه چرا اسفندی ها رو که با سوها با برستن به جنگ روی که بنیره برای اینکه که پادشاهی در سر نداشته باشه حالا سؤال اول پردوسی چه نداری در باید من؟ اولا من یه سنگ بزنم به یه چیشه این تو بیت در افراده های داستانه و در اندیشه ایرانی این در حقیقت پرسش نیست این حقیقت نقطه است در واجه گیا مره که بعد کم کم در پهلوی شد گایوک مرت در فارسی شد کیومل گیه گایا یعنی زنده که از ریشه گی عبسته گرفته شده این ریشه گی در گیان کردی در گیان پهلوی یعنی جان هست گیان تبدیل شده به جان که تبدیل به جان شده در گیاه هست در گاو هست در گوسفند هست در گواز هست اینا یعنی زندگی گایا مرطا یعنی زنده میرا یعنی این که هر موجود زنده سرانجام به مرگ می و اگر نداره اون بیت از فدوسی نیست شما اله شما مثل شانومی من رو ندیدی من خواهش میکنم که چند تا چند روی شانومه دادم بایدیو فرهنگ شما با این علاقه که دارید یکی از اونها رو بگیرید شانومه رو اگر خواست اگر از منظر شعر نگاه کنیم خیلی زیباست خب باشه زیباست اف... قدرتمند افضاده کنگان گاه گاه عبیات زیبا هم من در پیشگفتار در شانومه آوردم شاید حدود 100 رج بیت رو آوردم که بسیار زیباست اتفاقا زیباست خیلی خوبه اما افضاده به شانومه به دلایلی که آوردم افضاده به شانومه است این اون بعد از این اگر بازی بادی به خیز کنج و پنجه شست ساله صد ساله درباره این کنج و کنج دانشمندان رو در حقیقت چانمشناسان رو ما درن کار میکنن آخر دیگه روانشاد استاد به نوابی گفت که این کنج که باشه کنگ کنگه که پایتخت افراسیاب بوده خب کنگ پایتخت افراسیاب به سهراب که در سمنگان بوده چه اعتباد داره تونتبادی بخ... برای از کنج از کنج خاک افتند رو نارسه تورنج اینو دیگه آخرین حرف بود که روان شد که من خیلی دوست شاشتم استاد بسیار خوبیم بود با این حال اشتباه میکنی اینا همه از هم همون بخش همه افزادشان هم هست درست سخن درست اینه که گایا مریتا یعنی کسی که جاندار باشه پایان به مرک میرسه به ویژه در همون داستان قبل از اینکه که نهایی انجام بگیره می اندکی که گشتاس کابوس نگران هست بعد میگه در مرگ رو آن بکوب روشن میگه در مرگ را آن بکوبد به پای نخستین به اصفنده را آید زجای یعنی کسی که سوار اصف میشه میره به جنگ خودش داره در مرگ را میکوبه اعتماد قوی ممکنه کشته بشه در جای دیگه باست در بکشه با شدن به به دست تجاب ما بینیم سخن خیلی زیبایی که انان بزرگی احرام کس که جوست نخستش به به خون دست شست که یا خود کشد یا کشندش به درد خوجسته کسی کو بزرگی نکرد. نهایت جنگ کششدن یکی از این دو دوتاست. و این می‌بینیم در همون داستان رستم سراب رستم اینو میگه منطقه درد از اینه که من البته در تفسیرهای که درشانه کردم اینا یک, یک شخص نبوده این مهاجرت سیستانیان بوده به شهری به نام سمنگان نجاد تازهی به نام سرخاب در نمشته های ایرانی و از اسلام سهراب به گونه سرخاب هم اومده یعنی به نام سهراب یا سرخ میدونید سهر هنوز در زبان کردی ببینیقه سرخه این سهرورده شما اگر اکس هوایی سهرورده ببینید میخوا که زبان کردی سوهر وردی نه خاک سرخ سوهر یعنی سرخاب که در باعث از های ایران پس از اسلام تو تاریخ اومده این گروهی بودن که به هوای اومدن به سرزمین پدری اومدن و بالاخره چون ناشنایی بود جنگ اتفاق افتاد این کل تفسیر برنامه است که اتفاق سیستونیون معمور شدن برای اینکه برن جیوگرافی بکنن در روز اول تقریبا پیروزی با سمنگانیان بود سهرابیان بود روز دوم پیروزی با سیستونیان شد که سهراب از میره. شما میبینید که همونجا هم کاووس پنت میده به رستم که پریشان نباش میگه روانش کهون شد به دیگر سراحی یعنی ایرانیان باستان معتقد بودن که تا سه روز روان پیرامون پیکر هست بعد از اون روان میپیونده به همه روانان یعنی به روانهای دیگر مفهوم گفتار کابوس اینه که تو داری گریه میکنی براش اما او به روان و نیاکان و, و دیگر روانان پیوسته جای گریه نیست یعنی زندگی جاریه زندگی برده. جاریه مرگ برده. پایان نیست. کبوتر نیست نخیر. نه نیست. خیلی اون. حالا عقیاتی از در مورد مرگ داری دارید بزنید بسیار, بسیار هستی که مرگ در شاهرامه زیاده مطلق راجب خود اون مرگ آخه اینی که من خوندم شما فرمودید الحاقیه حالا بازم یه پرسشی داشتم این که آیا واقعا میشه درود فرستاد به این شاعران شعرهای الحاقی؟ چون نه, نه, نه. تسلطه نه. نه. نه. فروفل... چون استاد شیخ سعدی با همه عظمتش اونجایی که میخواد بیاد همانسی شعر بگه مثل نمیتونه با این حال هیچ این بدی با این قدرت نمیتونه. شعرها از آن فردوسی. فردوسی میشد که شما گفتین حماسی نبود. این شعر اصلا حماسی نیست. لحن حماسی داشت. بالاخره این تکرار من به شما دو بار بگم در این برنامه خوب نیست. فردوسیه. یک بار به با شما عرض کردم که من حدود صد رج از اشعار الهاق افسودار آوردم که خیلی زیباست اما هست. فقط شاید... نه حدود پیرامونه نه بگردیم بیشترم است من در, شا... در پیش گفتار آوردم بلست. که نشون داده میشه اینا که شما من از این شاعران فقط از جدی رو دریافتم از جدی هیبه شعرش ام. معلومه که بخشای از شانامه افتادار شانامه یکیه اینا جیره... جیرخار بودند و دون هممت بودند و پول گرفتند و شانامه ما رو ویران کردند حالا که دیگه بعد از هزار سال درست بعد از هزار سال درست به روز و تاریخ و ماه و سال این کار شده ما بیانم دیگه گفتارهای فدوسی رو بخونیم برده. و افصول ها دیگه نفردست بسیار اصلاد این سوال دوبارم یعنی پرسش دوبارم خب در مورد پسرکشی در تاریخ ما بوده ولی هیچ کدوم سوگنامه نشده مثل روستان و سهرها میدونید این, این سوگ برای چی شد برای اینکه یه پدری برای دفاع از آب و خاک و مرز و کشور و بومش فرلند خودشون میخوشه این خیلی خیلی درده البته اسفندیار به این طور نشد برای چی؟ برای که اسفندیار خودش پادشایی میخواد. با حضور پدر امتون اونم هم همه رمز و راز داره ولی ظاهر داستان رو بگیریم با حضور پدر چرا باید پادشایی میخواد. و بعد پدر درست در حقیقت پاسخ اون رو به همون ترتیب میده او رو به قلتگاه میفرسته تا پادشاه نشه یعنی گناه هم از ازشکندیاره هم از گشتاس به اما شما متقدید و... که سهراب این ویژگی ها رو نداشته سهراب با, دفل... ری... با سپاه دشمن اومد به ایران من اتفاقا در داستانهای رستان پهالوان که سالهای پیش نمیشتم هنگام جنگ بود گفتم این داستان رستان په سهراب یه پیامی برای ما داره پایام می که بچه ها رو قبل از اینکه با فرهنگ ایران رو گروه یعنی آشنا نشدن نفرستیم به خارج اینا میدون دشمن رو میشن. شما از اولین گروه هایی که روانشاد امیرکبیر فرستاد میبینید که از اول با ایران دشمن شدن رفتن اگر شما نماینامه جعفرخان از فرنگ برگشتن رو خونده باشید که شاهکاره نشون میده که جعفرخان رفت فرنگ و با سگش به نام ژژ و برگشته و همه مبانی فرهنگ و زندگی ایرانی رفت میکنه. آخرش هم به سگش میگه جوجو یا یادم بیاد ندارم. میگه پاشو بریم این کشور کثیف اینجا برای من تو خوب نیست. نمازجمه اینطور به پایان میرسه. چرا ما باید فرزندان خودمون رو آشنا به فرهنگ ایران بفرستیم خارج و اونو بیاد برگردن دشمن ما بشن؟ در اوایل جنگ هم همطور شد. یک گروه ایرانی من نمیخوام نام ببره. رفتن به کشور دوشمند پیبستن تا از اونجا بیان به خاک ایران هم بکنن اینا برای این که با فرهنگ ایران آشانه شدن من اینجا یه پیشنهاد میکنم به خردمندان توجه کنن یک گروهی از جوانان ایران هستن که تحت عنوان فرزانگان و کسانی که حوش و زیاده نامی براشون بذاشن الان من اون نام رو به خطر ندارم و به اینا اختصاصا درس می آموزشگاه های ویژه دارن در همه استان ها به اینا هیچ خودو مهر ایران رو آموزن این پیشنهاد من از روی نکخاهیه شما به اون بچه ها مهر به اسلام رو بهشون می آمیزید. خب هر جایی ممکنه انسان مسلمون باشه یعنی برن آمریکا, به امریکا خدمت کنن مسلمون باشه به ویژه به این گروه ها تیز حوشان میگن به ویژه بینا اینا باید ایران رو در آشنا کنید من یک بار فقط در ساری رفتم و اینو چقدر بال می‌زدن وقتی که شاهنامه رو می‌شنیدن خب اینا اگر این برنامه برای نو پیاده بشه اینا می‌بینن کشورا خارج برای دیگران در خدمت بکنن بلکه دوست دارن کشور خودشونو رو این پیام بزرگ رو گوش کنید برای به خصوص برای, برای همه ولی برای تیز و بیشتر این برنامه گذاشته بشه با فرهنگ ایران آشنا بشن که وقتی داشته باشن به اگرم به بخواهن به ایران بمونن افتخار کنن که در ایران بمونن بله. نه که برن مغز و اندیشه و جان روان خودشون در اقتیارو دیگران بذارن در حالت دست کشور خارجی میشن این پیامیه که داستان روزم سوراب داره با عشق و آه همراه این همه من پار شنیدم که سفیر گذشته کانادا در ایران گفته که من در طول چهار سال سفارت هم. نمیدونم هفته دویست چند جوان دانشجو از ایران بردن بکنه دارم خب اینا میرن برای اونا خدمت این پیام رو شما بشنوید دستگاه بشنبه همه ایرانیان بشنبه تا بچه تا فرزند ایرانی مهر ایران رو نموخته تا افتخارات عظمت فرهنگ ایران و دانش نیاکانش رو در نیافته دست بر با این به این مرحله که رسیدن بر میکردن، چون ما همیشه ایران رو دوست خواهند داشت این پیامی است که داستان رستم سوراب میده گریش اونجاست خود سورابم بعد از اینکه رستم شروع میکنه به سوگواری بینی که میگه این بدتری است به کرده خود نباید گریست خود سوراب میگه اما دل به حال رستم میسوزه که فرزندش رو در راه دقیقت می از این خاک از دست داد اینه استاد خب. این یک بچهی از ماجراست. هست حالا بچه خود شخصیت سهراب رو اگر بهش نگاه کنیم یعنی فارغ از این ماجره ها که سهراب ببنید یک انسان یک جوان خام نه. یک جوانی که به هر حال سایه پدر بالا سرش نبوده مثل رستم که سایه زال بالا سرش بوده رشد کرده پرورش پیدا کرده و با اون یال و کوپال و قدرت و طوان اقتدار مقرور هم شده من اینجا یک نکته ای رو یادداشت کردم مثلا برای مثال حجیر یا حجیر یا حجیر یا حجیر, یا حجیر. کدوم درست درست هم حجیر هجیر میگن هم یعنی حجیر یعنی حالانی یعنی جیر به زبان زیرک یعنی چایسته آقا هم حجیر میشه گفت هم حجیر نه. تو فرهنگ معنی کردم هر دوتا رو درست. به حال پیش سهراب رستم را ستایش میکنه هجیر سهراب عصبانی میشه خشمگین میشه و به هجیر میگه تو مردان جنگی کجا دیده ای؟ با. که بانگ پی عصب نشنیده ای که چندین زر رستم سخن بایدد زبان بر ستودنش بکشایدد چو دریای اندر آید رجای ندارم دم آتشه ندارد باید. دم آتش تیز پای سر تیرگی اندر آید به خواب چو چی غزمیان برکشد افتاب یعنی من مثل آفتابم رستم مثل تیر بیه خب با همه این حرفا مثلا میشه گفت که در مورد سهراب با اشتباهاتی که داشته سهراب در این مواجهه میشه در مورد سهراب قضاوت اخلاقی کرد میشه ام. مثلا گفت اشتباه کرد بد کرد بد بود به این اشتباه بزرگ سهراب اینه که با صفار دشمن اومد به ایران می می‌بینیم که وقتی با معتر صحبت میکنه. میگه که برنگیزم از تخت کاووس را به پا بفکنم بیژن و توس را همه شهر ایران آتش بزنم چبار کنم و روزمان را پدرم بیارم, بیارم اینجا و افراسی ها چون رستم پدر باشد و من پسر نباید بگیر که یکی تاج بر یعنی پدرم پادشاه جهان بکنم و منم پهلوانش باشم میبین اینا اشتباهه. همه منطقه یک ادههی که در حقیقت واقعیت داستان نمیکنن اینجا میگن سورب‌کوشی رو برای سوراب گریم کردن نه اون چیزی که باید گریه کرد برای رستم بار سوم میگم دیگه نمیگم که پسر خودش رو به خاطر دفاع از مرز رو بومش کشت استراناد استاد این جمله زیبا هر چقدر به نظر من تکرار بشه خسته کننده نیست شما به نظرم من صدها بار شاهنامه رو خوندید ولی براتون تکراری نشده یعنی این تکرار تو این بحث‌ها استاد اصلاً نیست واقع. اما یک پرسش دیگه اینکه رستم در مورد رستم هم من خوندم و شنیدم که در شاهنامه و در مواجهه با سهراب با تمام اون کامل بودنش متعالی بودنش از هر نظر از نظر اخلاقی از نظر جنگ